Up. Up. Up. واني فارسي بناوی کردیگاری مضمون بهاوتا سلامتان لیبی جوگران خوشوستی برنامه وانی فارسی 13 زن امر محمد چیدکات او لگل یکی گله هاوپولکانی بنای حمید دتیت بازاری جورو کوئی تهران. ام بازاره لباسوری تهران هالکوتو قله کنه. بو محمد که حضدکات همشتیک بزنی سر ل همشتیک دربینی، ام بازاره زورجگای سرنج. او وایپ باشتر لجیاتیش تکرین سیری خلقو فروشگانی بازار کبکت. لپیش دا وشن وکان دبیسند دتوانن أم شانا للي و بنسنوو بمجورة حسنتر لبريانكن بازار بازار بازر این اوه قدیمی قدیمی کن سی سد سی سد سال سال سال قبل قبل پیش اینجا. اینجا ایره بازار تهران بازار تهران بازاری تران چه جالب چه جالب سیر اسم اینجا چیست؟ اسم اینجا چیست؟ نوی ارتشیا. مردم، مردم، خلق، میگویانده، میگویانده، دلنه. بازار بزرگ، بازار بزرگ، بازاری گوره، بازاری گوره. خیلی، خیلی. زور هست هست هیا فروشگاه فروشگاه فروشگاه همه چیز همه چیز هموشتک خوب خوب باش. ارزان، ارزان، ارزان ارزان هرزان roh roh roh roh dalan barik barik barik heich heich heich saqf saqf mich poland بلند بررز برایم برایم ب من جالب است جالب است. سرنج راکشم. من فکر می کنم من فکر می کنم لموایم همیشه همیشه همیشه شلوغ. شلوغ، خرابالق، شهرها، شهرها، شرکان، شهر، شهر، شهر، دیگر، دیگر، دیگر، بازار قدیمی، بازار قدیمی، بازاری لمس آنها دارند آنها دارند اوان حyana همه همه حمو همه شهرها همه شهرها همو شرکان یستا جوی بگرن لی و تویج نیوان محمدو حمیدی هواهی. حمید فکر میکنم این بازار خیلی قدیمی است. حمید فهم می کنم این بازار خیلی قدیمی است. بله این محل قدیمی است از سیصد سال قبل اینجا بازار تهران است. بله، این محل قدیمی است از سیصد سال قبل اینجا بازار تهران است. چه جالب؟ اسمی اینجا چیست؟ چه جالب؟ اسم اینجا چیست؟ مردم به اینجا بازار بزرگ میگویند. مردم به اینجا بازار بزرگ میگویند. خیلی فروشگاه در این بازار هست. خیلی فروشگاه در این بازار هست. بله. اینجا همه چیز هست. خوب و ارزان. بله. اینجا همه چیز هست خوب و ارزان اما راهروی بازار باریک است اما راهروی بازار باریک است بله راهرو باریک و سقف خیلی بلند است بله راهرو باریک و سقف خیلی بلند است آره اینجا همه چیز برایم جالب است آره اینجا همه چیز برایم جالب است خوشبینان. استا و تویجی نیوان امدوه بلام بورگرانی کردیش حمید فکر میکنم این بازار خیلی قدیمی است حمید پیانوائیم بازار زوری لمجینه بله این محل قدیمی است از 300 سال قبل اینجا بازار تهران است بله امگرکه لمیجینه لا ست سال مبکشوه ارا بازاری ترانه چه جالب اسم اینجا چیست؟ سیرا، نوی ارا چیه؟ مردم به اینجا بازار بزرگ میگویند خالق به ارا دلن بازاری گوره خیلی فروشگاه در این بازار هست. ام بازار زور فروشگی هست. بله. اینجا همه چیز هست. خوب و ارزان. بله. لیر همه مشترک دستکش باش و هرزن. اما راهروی بازار باریک هست. بالام دالانی بازارکه باریکه. بله. راهرو باریکو سقف خیلی بلند است. بله دالان کهی باریکو میشه کهی زور بارزه. آره اینجا همه چیز برایم جالب است. آره لیر هم مشک بمون سرانجام کش. دیوادارم باش جتنب و وتونیژن نیوان حمید محمد را گرفت به امزارج وتوجاکا د بیسینو و فارسی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 بله، راه رو باریک سقف خیلی بلند است آره اینجا همه چیز برایم جالب است محمد سیری جمجولو هاتوچوی خلک کرده کرد. بازار زور قربالخو برمين و خلق لاهات وچو سودا کردن و شد کرمدن لراروك جلوبارك دبيني لغوزارك ديكا زيرو زنبر اویتريان فرشو مافورو ايد هرچی بتهاویلن بازارا دزدکم استاش دریجي و توجه این اوان محمد و حمید انجا همیشه شلوغ است انجا همیشه شلوغ است بله، اینجا همیشه شلوغ است. بله، اینجا همیشه شلوغ است. شهرهای دیگر هم بازار قدیمی دارند. شهرهای دیگر هم بازار قدیمی دارند. بله، همه شهرهای ایران بازار قدیمی دارند. بله، همه شهرهای ایران بازار قدیمی دارند. بازن برنامه‌ای که دیکه وانی فرسیتان پیشکش کرد تا برنامه‌ای که دیکه و به یک گشنوی که دیکه حمله کردند یزدانی یزدان